مصنوی معنوی مولوی برنامه یک مدافعه امرا آن حجت را به شبهه جبریانه و جواب دادن شاه ایشان را. پس بگفتند آن امیران کین فنه است. از انایت هاش کار جد نیست. قسمت حق است مهرا روی نغز، داده بخت است گل را بوی نغز گفت سلطان بلکان چز از نفس زاد رأی تقصیر است و دخل اجتهاد ورنه آدم کی بگفتی با خدا ربنا انا ظلمنا نفسنا خود بگفتی که این گناه از بخت بود چون قضا این بود حزم ما چه سود؟ همچو ابلیسی که گفت اغوی تو شکستی جام و ما را میزنی بل قضا حق است و جهده بنده حق هین مباش اعور چو ابلیس خلق در تردد مانده من در دو کار این تردد کی بود به اختیار این کنم یا آن کنم او کی گود که دو دست و پای او بسته بود هیچ باشد این تردد در سرم که روم در بر یا بالا پرم این تردد هست که موصل روم یا برای سهر تا بابل روم پس تردد را بباید قدرته ورنه آن خنده بود بر سبلتی، بر قضا کم نه بهانه ای جوان جرم خود را چون نهی بر دیگران خون کند زید و قصاص او به امر می خورد امرو بر احمد حد خمر گرد خود برگرد و جرم خود ببین جنبش از خور و از سایه مبین که نخواهد شد غلط پاداش میر خسم را میداند آن میر بسیر چون اصل خوردی نیامد تب بغیر مزد روز تو نیامد شب بغیر. در چه کردی جد کن واتو نگشت؟ تو چه کاریدی که نامد رای کشت؟ فعل تو که زاید از جان و تنت، همچو فرزندت بگیرد دامنت. فعل را در غیب صورت میکنند، فعل دزدی را نداره میزنند دار کی ماند دزدی لیک آن هست تصویر خدای غیب دان در دل شهنه چو حق الهام داد که چون این صورت بساز از بحر داد تا تو عالم باشی و عادل قضا نامناسب چون دهد داد و سزا چون که حاکم این کند اندرگزین چون کند حاکم احکم این حاکمین چون بکاری جو نروید غیر جو قرض تو کردی زکه خواهی گرو جرم خود را بر کس دیگر منه هوش و گوش خود بدین پاداش ده جرم برخود نه که تو خود کاشتی با جزا و عدل حق کن آشتی رنج را باشد سبب بد کردنه بد ز فعل خود شناس از بخت نه آن نظر در بخت چشم احول کند کلب را کهدانی و کاهل کند متهم کن نفس خود را ای فتا، متهم کم کن جزای عدل را. توبه کن مردانه سر آور بره، که فمن یعمل به مسقالن یره. در فسون نفس کم شو غرهی، کافتاب به حق نپوشد ذرهی. هست این زرات جسمی ای مفید پیش این خورشید جسمانی پدید. هست زرات خباتر وفتکار پیش خورشید حقایق آشکار. حکایت آن صیادی که خویشتن در گیاه پیچیده بود و دسته گل و لاله را کلهبار به سر فرو کشیده تا مرغان او را گیاه پندارند و آن مرغ زیرک بوی برد اندکی که این آدمی است که بر این شکل گیاه ندیدم اما هم تمام بوی نبرد و افسون او مغرور شد، زیرا در ادراک اول قاطعی نداشت، در ادراک مکر دوم قاطعی داشت. رفت مرغ در میان مرغزار، بود آنجا دام از بحر شکار، دانه چند نهاده بر زمین، بانسیاد آنجا نشسته در کمین، خیشتن پیچیده در برگ و گیاه تا در افتد سید بیچاره زراه. مرغک آمد سوی او از ناشناخت، پس توافه کرد و پیش مرد تاخت. گفت او را کیستی تو سبز پوش در بیابان در میان این وحوش گفت مرد زاهدم من منقطه با گیاه گشتم اینجا مقتنه زهد و تقوا را گزیدم دین و کیش زان که می دیدم اجل را پیش خیش مرگ همسایه مرا باعث شده کسب و دکان مرا برهم زده چون به آخر فرد خواهم ماندن خونه باید کرد با هر مرد و زن رو به خواهم کرد آخر در لحد آن به آید که کنم خو با اهد. چون زنخ را بست خواهند ای سنم، آن به آید که زنخ کمتر زنم. ای بزر بفت و کمر آموخته، آخر استت جامع نادوخته. رو به خاک آریم کزوی رستهیم دل چرا در بی بیوفایان بستهیم جد و مان قدیمی چهار تبع ما به خیش آریت بستیم تم سالها همصحبتی و همدمی با عناصر داشت جسم آدمی روح او خود از نفوس و از عقول روح اصل خیش را کرده نکول از نفوس و از عقول پرسفا نامه می آید بجان که بی وفا یارکان پنج روزه یافتی، روز یاران که هن کودکان گرچه که در بازی خوشند، شب کسان چون سوی خانه می کشند. شد برهنه وقت بازی تفل خورد، دوست از ناگه قباب و کفش برد، آنچنان گرم او بازی در فتاد، کانکلاه و پیرهن رفتش زیاد، شد شب و بازی او شد بیمدد، رو ندارد کو سوی خانه رود. نیشنیدی اینمد دنیا لعب، باد دادی رخت و گشتی مرتعب پیش از آن که شب شود جامعه بجو روز را زای مکن در گفتگو. من به صحرا خلوت بگزیدم خلق را من دزد جامعه دیدم نیم عمر از آرزوی دلستان نیم عمر از غصه های دشمنان جبه را برد آن کلاه را این ببرد غرق بازی گشته ما چون تفل خورد نکشبانگاه عجل نزدیک شد خل هاز اللعب بسک لا لاتعد هین سوار توبه شو در دوست رس جامه ها از دوست بستان باز پس مرکب توبه عجایب مرکب است برفلک تازد به یک لحظه زپست لیک مرکب را نگه می دار از ان کو بدوزدید آن قبایت را نهان تا ندزدد مرکبت را نیز هم پاس دار این مرکبت را دم بدم حکایت آن شخص که دزدان قوچ او را بدوزدیدند و بر آن قناعت نکردند، به حیله جامعه را هم دزدیدند. آن یکی قچ داشت، از پس می دزد دازد، قچ را برد، حبلش را برید. چونکه که آگه شد، دوان شد، چپ و راست، تا بیابد کان قچه برده کجاست. بر سر چاه بدید آن دوزد را که فغان میکرد کیوا ویلتا. گفت نالان از چی ای اوستاد. گفت همیان زرم در چه فتاد. گرتوانی در روی بیرون کشی، خمس بدهم مرتو را با دلخوشی. خمس سد دینار بستانی بده است. گفت او خود این بهای های ده کچ است. گردر بربسته شد ده در گشاد. گر قچه شد حق اواز اشتر بداد. جامه ها برکند و اندر چاه رفت. جامه ها را برد هم آن دزد تفت حازم باید که ره تا ده برد حزم تم تا او آورد او یکی دزد است فتنه سیرتی چون خیال او را به هر دم صورتی کس نداند مکر او الا خدا در خدا بگریز و واره زاندقا مناظره مرغ با سیاد در ترهب و معنی ترهبی که مصطفی علیه السلام نهی کرد از آن امت خود را که لا رهبانیت فی الاسلام مرغ گفتش خاجه در خلوت میست دین احمد را ترحب نیک نیست از ترحب نحی کرده است آن رسول بدعت چون در گرفتی ای فزول جمعه شرط است و جماعت در نماز امر معروف و ز منکر رنج بدخویان کشیدن زیر صبر منفعت دادن به خلقان همچو عبر خیر الناس ان ینفعن فانوس ای پدر گرنه سنگی چه حریفی بامدر در میان امت مرحوم باش سنت احمد محل محکوم باش گفت عقل هر کرا نبود رسوخ پیش عاقل او چو سنگ است و کلوخ. چون همار است آنکه که نانش امنیت است. صحبت او عین رهبانیت است. زان غیر حق همه گردت رفات. کل آتن بعد و هینن. فه و آد، حکم او هم حکم قبلی او بود مرده اش خون چون که مرده جو بود هر که با این قوم باشد راهب است که کلوخ و سنگ او را صاحب است خود کلوخ و سنگ کس را ره نزد، زین کلوخان صد هزار آفت رسد گفت مرغش، پس جهاد آنگه بود، کینچنین رهزن میان ره بود از برای حفظ و یاری و نبرد، بر ره ناامن آید شیر مرد ارق مردی آنگه پیدا شود که مسافر همراه اعدا شود چون نبی صیف بود است آن رسول امت او سفدرانند و فحول مصلحت در دین ما جنگ و شکوه مصلحت در دین عیسی غار و کوه گفت آره بود یاری و زور تا به قوت برزند برشر و شور چون نباشد قوته پرهیز به در فرار لایوتاق آسان بجه گفت صدق دل بباید کار را، ورنه یاران کم نیاید یار را. یار شو تا یار بینی بی عادد زان بی یاران بمانی بی مدد. دیو گرگست و تو همچون یوسفی، دامن یعقوب مگذار ایسفی. گرگ اغلب آنگه گیرا بود کزرمه شیشک به خود تنها رود آنکه سنت با جماعت ترک کرد در چنین مصبأ نخونه خیش خورد هست سنت راه جماعت چون رفیق بی ره و بی افتی در مزیق همراه نه کو بود خسم خرد فرصت جوید که جامع تو برد میرود با تو که یابد اقبه که تواند کردت آنجا نحبه یابود اشتر دله چون دید ترس گوید از بحر رجوع از راه درس یار را ترسان کند زشتور دلی این چونین هم عدودان نه ولی راه جانبازی است در هر قیشه آفت در دفع هر جانشیشه راه دین زان رو پر از شور و شر است که نه راه هر مخنس گوهر است در ره این ترس امتحانهای نفوس همچو پربیزن به تمیز سبوس راه چه بود پرنشان پای ها یار چپود نردبان رای ها گیرم آن گرگت نیابد زهتیات بیز جمعیت نیابی آن نشات آن تنها در ره او خوش روود با رفیقان سیر او ستو با غلیزی خر زیاران ای فقیر در نشاط آید شود قوبت پذیر هر خریک از کاروان تنها رود برویان ره از تعب ستو شود چند سیخ و چند چوب افزون خورد تا که تنها آن بیابان را برد مرترا می گوید آن خر خوش نو گر نی خر همچنین تنها مرو آن که تنها خوش رود اندر رسد با رفیقان بیگمان گمان خوشتر رود. هر نبی اندر این راه درست معجزه بنمود و همراهان بجوست گر نباشد یاری دیوارها کی براید خانه و انبارها هر یک دیوار اگر باشد جدا سقف چون باشد معلق در هوا گر نباشد یاری هبر و قلم کیفتد بر روی کاغذ رقم. این حسیره که کسی می گسترد گر به با هم بادش برد حق زهر جنس چو زوجین آفرید، پس نتایج شد زجمعیت پدید. او بگفت و او بگفت از احتزاز، بحثشان شد اندر این معنا دراز. مصنوی را چابک و دلخواه کن، را موجز و کوتاه کن. بعد از آن گفتش که گندم آنکی است گفت امانت از یتیم بی‌وصی است مال ایتام است امانت پیش من زن که پندارند ما را معتمن گفت من مسترم و مجروحال هست مردار این زمان بر من حلال هین به دستور از این گندم خورم ای امین و پارسا و محترم گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گرخوری مجرم شوی ور ضرورت هست هم پرهیز به برخوری بار زمان آن بده مرغ بس در خود فرو رفت آن زمان توسنش سر بستد از جذب آنان چون بخورد آن گندم اندر فخ بماند چند او یاسین و الانعام خاند بعد درماندن چه افسوس و چه آه پیش از آن باییست این دود سیاه آن زمان که هست جنبید و هواس آن زمان میگو که ای فریاد رست کان زمان پیش از خرابی بسره است بو که بسره باره هم زنشکه است ابکلی یا باکی یا ساکلی قبل حتم البسرت والموصله نه علی قبل موتی وعتفر لا تنهلی بعد موتی وستبر ابکلی قبل سبوري فن بعد طوفان نوا خلل بکا آن زمان که دیو می شد راه زن آن زمان باییست یاسین خواندن. پیش زان کشکسته گردد کاروان آن زمان چوبک بزن ای پاسبان.